بسم الله الرحمن الرحیم فصلون امورون تخالف فيها المرأة و این فصل در رابطه با اون است که زن مخالفت میکنه با مرد به عبارتی اون اموراتی هستند که زن فرق دارد با مرد یعنی احکامات زن فرق دارند با مرد تخالف فيها المراه والرجل مخالفت دارند در اون مخالفت دارد در اون کارها زن با مرد فرق دارد در اون زن با مرد قل مرات تخالف الرجل في خمسة اشياء زن مخالفت دارد با مرد یا فرق دارد تفاوت دارد با مرد در پنج چیز فالرجل مرد یجا فی مرفقه عن جنبه دور میکند در سجده آرنجهایش رو از پهلوهاش مرد نمیچسبونه مرد موقعی که تو سجده هست اورنج رو از پهلوهاش دور میکنه دو و یقل بطنه في الركوع والسجود ف و و دور میکنه هم شکمش رو از رانهاش در رکوع سجده پس مرفقين رو از جنبينش دور میکنه و شکمش رو از رانهاش هم در رکوع هم در سجده مرد اما و سه, سه و في یجهارو موضوع الجهر اونجایی که جهریه مرد جهری میخاند چار و اذا شيء في فی الصلاة سبح زمانی که برست به اون چیزی در نماز مشکلی پیش بیاد امام خطایی بکنه مشکلی پیش بیاد در نماز در کل سبح مرد سبحان الله میگه حسبیم می‌خوونه وعورت رجلی ما بين سرته و رکبته و مرد ما بين ناف و زانوهاش هاش هست. این, این پنج تا مال مرد بودن. حالا ببینیم زن و مرد و زن بعضها یا بعض جمع می‌کنه بعدی قسمتی از خود رو به قسمت دیگر چسبیده. اعزاش رو به هم می چسبونه تبم و بعضها بها الى بعد می پیونداند بعضی از اعزار رو به بعضی دیگر جمعشون میکند اون فاصله هایی رو که مرد در شکم و رانها و مرفقین و جمع بین اونا داشت میگه زن تبم و بعد الى بعد جمع میکنه بعضی رو به بعضی دیگر و تخفید صوتها صوتحا به حضرت الرجال الاجانب سداش رو پا این میبره در حضور مردان بیگانه چهار و ایده فی انفصالاتی صفقت زمانی که رسید مشکلی کاری در نماز پیش اومد صفقت کف میزنه کف زدن هم باطن دست راسو و با باطن دست چپ یا باطن دست راسو و به ظاهر دست... کف دست چپ ها؟ یا همین کفی که میزنیم یا به پشت دست خلاصه صدایی که از زدن دو دست حاصل میشه فرزن در ناز امام جایگیر گیر کرد رکت اضافی رفت زن دیگه سبحه نمیکنه سبحان الله نمیگه بلکه دستاش رو به هم دیگه میزنه برای متوجه کردن وجميع بدن الحرة عورت الا وجهها وكفيها فرق بعد این است که تمام بدن زن آزاده عورت است جز صورت و جز دست و دستش والامه كالرجل میگه و در و مثل مرد است بله خب این حکمی اینجا آورده بله دیگه ولا اماتک الرجل اون اورتی رو که آزاده داره این نداره پس زن در پنج چیز با مرد فرق کرد جم و جور می میسه در نمازش صداش رو پایین میبره در حضور زنان مردان زمانی که در اذانا هاشه حاشه زمانی که در نماز چیزی پیش اومد کف میزنه مثلا به نان مثال یکی اومد در و زد برای داخل شدن برای اینکه اونو بفهمونه دیگه سبحان الله نمیگه بلکه کف میزنه و با. تمام بدنش عورت هست فصل مبطلات الصلاه دي. باطل کنندگان نماز والذي يبطل الصلاه عشر شیئا اون چیزایی که باطل میکنند نماز را یازه چیز میباشند یک الکلام العمد سخن گفتن عمدی و عمل الكثير عمل زیادی اه؟ تو نمازه ولین قدر مشغوله به چیزهای دیگه که گوی در نماز نیست سه والحدث بیوزو شدن چهار و حدوث النجاسه بیشومدن نجاسه پنج و انکشاف العورت کشف شدن و ظاهر شدن عورت اه حدوث نجاسه نجاستی تو نمازه که براش پیش میاد. خلاصه رو لباسش میچسبه. بچه ای میاد مثلا روش میشاشه از این مسائل. حالا ما زیاد مثال نمیزیم بخاطر اینکه مختصر باشه. وانکه شافل ظاهر بودن ظاهر شدن عورت و تغییر النیه و همچنین تغییر نیت دادن در نماز سبب میشه که نمازش باطل بشه. س نمازو در نمازی میاد نیتشو نمازی دیگر میکنه و استدبار القبله پشت, رو پشت شو به قبله کردن در نماز نماز باطل میشه و خوردن سبب باطل شدن نماز میشه در نماز و شرب اینا همشون در نمازه و شرب نوشیدن و القحقه با صدای بلند خندیدن و رده و آخرین باطل کننده نماز خوب که آورده رده هست فصل عدد رکعات الصلاه تعداد رکعت های نماز و رکعات الفرائض 17 تا عشر رکعت ركعت رکت های نماز فرض 17 رکت می باشند بله پنج عدد نماز داریم صبح دو رکت زور چهار رکت عصر چهار رکت مغرب سه رکت هم چهار رکت که می شن رکت فيها أربعون وثلاثون سجدة در اينها در اين هفته ركات سي وچارة سجدة وجود داره باله هفته ركاتا هفته ركاتي دوتا سجدة داره هفته هزار و تكبيره و 94 تا تکبیر وجود داره در نماز صبح 11 تا در نماز مغرب 17 تا و در نماز های چار 22 تا نماز های چار 3 تا نماز هستند زهر و عصر و عشق که با هم میشند 94 تا وعشر تسليمات، ومسلمه ديگه پنج بعد نماز هند داحت سلام ومئتن وثلاثن وخمسون تسبيحة و سد و پنجا و وجود داره اون حده کمالش اون حد ادناش که بود خود ستا در ركو داریم سی در سجده اول تا درسجده دوم هم میشه نهتا. هفده رکت نهزار داریم. هم میشه سی تا تسبیح باله. و جمله الأركان في الصلاة میه و سی و جمله ارکان در نماز هستند سی دو بیست و في صبح سی با البته اون آ، آ، تو معنینه هایی که وجود داشت و بدون اون یکی که آورده بود که عدم نیت چی، نیت خروج از نماز رو که جز ارکان گفت بعضی ها اینو حساب نکنیم میشند؟ 126 تا رک زمانی که حساب نکنیم نیت خروج از نماز رو بله. رکنا رو اونجا دیگه آورده بود در في الصبح 30 روك والفي المغرب 42، در مغرب شلدو تاروك وفي الربائية أربعة وخمسون روك ودر نماز هاي الربائي بنجاهو ومن عجز عن القيام في الفريضة هركز آجز شد ك أزيستادن در نماز فرس. نبیتونست در نماز فرض بیستد توان استادن نداشت صلا جالسن خب نشسته نماز میخونه و من عجز عن الجلوس هر کس آجز شد از نشستن حتی صلا مستجعن این در حالت استجاء نماز میخونه استجاء یعنی بر نش میخواد، بر پهلوش میخوابه به این سمت که صورتش به سمت قبله باشه خب اگر شنان چه از حالت استجا آجز بود در حالت استلقاء یا همون مستلقیان على ظهره نماز میخونه مستلقی بر زهر اینه که بر کمرش میخواد رو زمین و بگونه ای که پاهاش به سمت قبله سرش سرشو بلند میکنن به سمت قبله میشه از اینا اگر دیگه خلاص توانه تمام اینا رو نداشت نه ایستادن نه نشستن نه استجاع نه استلقا دیگه بعد از اون دیگه با سر اشاره میکنه و با قلبش نیت میکنه و از این مسائل تا آخرش ولی میگه تا زمانی که عقل تو سر داره نماز ساقط نمیشه فاصلون از سحوف سلاتی صحف در نماز خطا کردن در نماز اشتباه کردن در نماز اومد میاد یه چیز رو ترک میکنه و المطروک من الصلاة ثلاثه و اشیاء آن در نماز ترک میشه بر سنو هند یک فرض یا فرضی ترک میشه دو و سنة یا سنت ترک میشه سه و حیعتون یا هیئتی ترک میشه فرض و سنت و هیئت. ما فرائز نماز رو داشتیم سنت رو و حیات نمازم فالفرز لا با انه سجود بسه. اگر کسی فرزی را ترک کرد در نماز چیزی جایگوزین فرض نمیشه در نماز کسی فرزی را ترک کرد منظور از فرز همون ارکان نماز هستنداره پس اگر کسی لایلو بو سجود و صحف سجده صحف نمیتونه جانشین ترک فرض بشه فرضی ترک شد سجده صحف نمیتونه جانشینش باشه بل ان ذکره زمان و قریبون اتبی بلکه اگر یادش اومد که فرضی رو ترک کرده و فاصله چندانی نگذاشته بود به اون فرضه رو میره انجام میده و بنا علیه نمازش رو ادامه میده و سجده لسه‌ها در پایان هم سجده سه میکنه و سجده سه‌ها هم در مذهب شوافه به این شکل است که قبل از سلام دو تا سجده انجام میده. در پایان نواز قبل از سلام دو تا سجده انجام میده. اینا احناف که خب یک سلام به یک سنت میدن بعدش سجده سه انجام میدن که هر تا در روایت آمدند و مشکلی ندارند خب پس آنچه که ترک میشه از نماز سه چیز هستن یکی فرضه اگر فرض ترک شد سجده جا جاگزینش نمیشه اگر فاصلهی نگذاشته بود یعنی زمان نزدیک بود اونو انجام میده و رو ادامه میده و در آخرش سجده صحف میکنه اگر نکه دیگه خلاص دو و دو من چیزی که ترک میشه سنت هست لا يعود اليها بعد التلبس بالفرض میگه سنتو اگر چنانچه بر نمیگرده اگه سنتو ترک کرد مثلا تشهود اول سنته میگه لا يعود اليها سنتو اگر ترک کرد بر نمیگرده به سنت بعد التلبس بالفرض بعد از اینکه رکعت رو انجام داده بود فرزی رو انجام داد ولکن یسجد للسهو عنها ولیکن سجده سهف میکنه جای ترکه سنتی که انجام داده و الاسه و الهیئه سه و من چیزی که از نماز ترک میشه هیئت است لا يعودو الیها بعد ترکه هیئته که ترک کرد بگی دیگه بعدا بشبر نمی و ولا يسجدو لسه بانها براش سجده سهف هم انجام نمی دباله و اذا شک فی عدد ما اتا به من الركعات بنا على الیقین و هو الاقل و سجد لسه یا مسلی دیگی که مطرح میکنه اینه زمانی که طرف شک کرد در تعداد رکعاتی که خوانده است و زمانی که شک کرد در تعداد آنچه که انجام داده است از رکعتها بنا علال یقین بر یقین بنا میکنه چطوری؟ مثلا شک داره که آی تا خونده یا چار خب ستا یقینه چون که اقل همیشه یقینه دیگه شک داره در سه و چار که آیه خونده یا چارت است؟ پس ستا همون یقینه میگه بلا ب... بنا علی یقین بنا رو بر یقین میگذاره یقین کدومه و هو الاقل کمترش شکل داره یکی خونده یا دو بنا رو بر یقین میگذاره که یکی رکعت است کمترینش و سجده سه و در پایان سجده سه میکنه پس اگر شک کرد که دو خونده یا سه فرض بر این میگذاره که دو خونده چون دو یقینه ولی سه نه. اگر شک کرد که خونده یا چار بنا بر یقین میکنه و یقین همون کمترینه که هست. اگر شک کرد یک خونده یا دو بنا رو بر یقین میکنه که کمترینه که همون یک هست. باعلی. و سجود و صحف سنتون سجده صحف خودش سنت است. و محله قبل السلامی محلش در مذهب امام شافعی رحمه الله قبل السلام است که گفتیم بعد السلام هم موردی ندارد. و اون شیوه رو احناف انجام میدند خب دیگه اگر هر کدوم از اینا اومدند شیوه دیگری رو انجام دادند از اونجا که روایتی وجود دارد دیگه موردی پیش نمیاد فاصل الاوقات التي تقرهو فی ها صلاة تحریمان اوقاتی که نماز مکروه است در اونها و خمسه توقات لا يصلى فيها إلا صلاة الله سبب پنج وقت هستن که در اونا نمازی خوانده نمی شود جز نمازهای سبب دار مثل مثلا فوت شدهی قضا شده یا تحییت الوضو شخص وجود گرفته یا تحییت المسجد اینا نمازهای سبب دار هستند یک این پنج وقت که مکروه تحریم نماز در آنها دو ماه هستند یک بعد صلات صبح حتی تا طلوع الشمس بعد از نماز صبح تا زمانی که خورشید طلوع کند دیگه نفل مطلق کسی نمیتونه بخونه در این وقت بله سبب دارو میتونه بخونه مثلا سنتای صبح میتونه بخونه یا از بیرون ما در مسجد صحیت المسجد میتونه بخونه دو وعند طلوعها حتی تتکامل و ترتفع قدر رمحن دو من جایی که ممنوست هنگام طلوع خورشید تا اینکه کامل بشه و به اندازه یک رمح نیزه برود بالا یعنی یک رب ساعتی از طلوع خورشید بگذرد تقریبا سه و اذا استوت حتی تزوله زمانی که خورشید در استوا بود تا زمانی که زوال بده در وسط بود تا زمانی که حالا شاید این اصطلاح دقیقه روزش نباشه ولی زمانی که خورشید در وسط قبل از زوال تا زمانی که زوال بدهد چهار و بعد سالات العصر حتی تغرب شمس بعد از نماز عصر تا زمانی که خورشید غروب بکند پنج آخرین وقت ممنوعه اندالغروب حتی آیت کامل غروب ها زمانه انجام خود غروب تا زمانی که غروب کامل بشه یعنی تا زمانی که وقت اذان مغرب میشه تا اون موقع دیگه از غروب تا اون موقع نماز جائز نیست فاصلون صلاة الجماعت نماز جماعت و صلاة الجماعت سنت مؤکدت میفرماید نماز جماعت سنت مؤکده می باشد و على المأموم ان, ون أن ينوي الاعتمام دون الامام بله بر و واجب است برمأموم على المأموم واجب است بر برمأموم نیت اعتمام رو بکند نیت اقتدار رو بکند نه نیت امامت را و یجوز ان یعتم الحر بالعبد جائز است که اقتدار بکند آزاده به برده والبالغ و بالمراحق و کسی که به سن بلوغ رسیده است به کسی که هنوز بالغ نیست و نزدیک بالغ شدن است ولا تصح قدوة رجل بمرأة وجايز نست اقتداء كردن مرد بزن ولا قارئ بأمي وجايز نست اقتداء كردن كسي كقراءة بلدست بكسي كأميست ببلد نيست. خوب وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاة أجزاه ما لم يتقدم عليه میگه در هر جایی و فی ای موضی انسلاف المسجد و در هر جایی نماز خوان در مسجد به نماز امام و هو عالمون بسلاته و اون مقتدی عالم بود به نماز امام آه الان چی میخونه کجا رسیده کجا نرسیده عالم به نماز امام بود کافی کافیست براش ما ذش درست معلمی تقدم عليه ولی مادامی که مقدم بر امام نباشه جلوتر از امام نباشه و انسلا لا المسجد اگر در مسجد نماز خوند و الماموم خارج المسجد قریبا منه و ماموم هم خارج از مسجد بود اما نزدیک به امام بود و هو عالم بصلاته و آگاه به نماز امام بود ها نماز الان امام چی می کجای کجا نیست در رکوی درس خاطر اینکه اگر آگاه به این مسائل نباشه که نمیتونه اقتدا بکنه ولا حائل هنای حائلی هم نبود پرده‌ای خلاصه میگه اونجا نبود جاز جایز است در یکی از تعلیقات معلم... تعلیقاتی که بر این کتاب زده بودن نگاه کردم نوشته بود زمانی که دوری مختری بیش از 300 زرا نبود که میگه این 300 زرا برابر است با 150 متر تقریبا پس زمانی که فاصله ای به تقریبا به اندازه 150 متر بیشتر نباشه بین او و میگه امام باله